به نام خدا خالق عشق و حدیث مهربانی سلام و درود فراوان بر شما ادب دوستان همراه است ان در صورت هر قصه ای بینان راز معنا حصه ای, ای برادر قصه چون پیمانه است معنی در وی به سان دانه است دانه معنا بگیرد مرد عقل ننگرد پیمانه را گرگشت نقل حکیمان رو رسم و آین چنینه که گاهی به رسم افسانه سخن میگن و گاهی از زبان دد و دام حدیث میکنن و مقصود از اون همه پند گفتن و حکمت ها موختنه در این مجال شبانه افثانه ای رو از سرزمین آزربایجان براتون نقل میکنم به نام افثانه ی اندرز پربه ها برگرفت از کتاب افسانه های آزربایجان برگردان حمید بخشمند آوردن که در گذشته دور در روستایی دور افتاده پسر جوونی به نام احمد زندگی می‌کرد. پدر احمد خارکن فقیری بود که با جمعآوری و فروش بوتهای خار خنواده خودش رو اداره می کرد ماهها و سالها سپری شد تا اینکه احمد بزرگ شد و تصمیم به ازدواج گرفت پدر و مادر احمد دختر همسایه رو برای اون انتخاب کردند. و احمد مدتی بعد با دختر ازدواج کرد و زندگی مشترک خودش رو آغاز کرد زن احمد دختر باسباد و درسوندهای بود اما احمد حتی نمیتونست اسم خودشو هم خلاصه همونطوری که توی زندگی زن و شویی برای بعضی از زن و شوهرها پیش میاد روزی بین احمد و همسرش اختلاف پیدا شد و حرفشون شد زن احمد در میون بگو مگو به احمد گفت اصلا میدونی چه؟ تو لیاقت همسری منو نداری. من آدم باسوادیم ولی تو چی؟ حتی نمیتونی اسم خودت رو هم بنویسی. این حرف زن به احمد خیلی گرون اومد و اونو به فکر فرو برد و بعد از مدتی تصمیم گرفت به مکتب بره و درس خوندن رو شروع کنه برای همین هم آماده شد و به شهری که مکتب کنه در اونجا دایر بود ر احمد در شهر اول یک کاری برای خودش دست و پا کرد و بعد شروع کرد به درس خوندن و سر هر ماه نصف درآمدش رو به خونش میفرستاد و بقیهش رو هم خرج زندگی خودش میکرد چند سال به همین منوال گذشت تا اینکه احمد مکتب رو تموم کرد و آماده شد که پیش خانوادش برگرده. موقع برگشتن سر راهش به مردی برخورد. با اون دوست شد و صحبت کنان مسافتی رو با هم پیمودن تا به یه روستای بزرگی رسیدن. مرد رو کرد به احمد و گفت خب دوست عزیز من اینجا روستای منه باید از تو جدا بشم. اما حالا که تو آدم باسواد و درس خونده ای هستی میخواستم قبل از خداحافظی از تو سؤالی کنم احمد گفت بگو دوست من بگو من حاضرم اونو بشنوم مرد گفت اگه روزی عصبانی شدی و خواستی در اون حال کاری انجام بدی قبلا چیکار باید بکنی؟ احمد در پاسخ سوال مرد هرچی گفت مرد اون جواب رد کرد و عاقبت احمد درمانده شد و با التماس گفت خب جواب اون سوال رو به من بگو در عوض هرچی بخوای به تو میدم مرد گفت آه گفتن جواب اون سوال شرطی داره و اون شرط اینه که باید دو سال پیش من بمونی، و در کشت و کار به من کمک کنی سر دو سال وقتی خاصی بری من هفت هزار تومن به تو موز میدم و اگه سلا دیدم جواب سوالت رو هم میدم احمد با خودش فکر کرد و گفت عجب حالا که من دارم دست خالی بخونم، خونم بر میگردم. چه بهتر که دو سال دیگه هم جا کار کنم و هفت هزار منم کاسب بشم بعد پیش خونه آدم برگردم آره جوری بهتره خلاصه احمد مدت دو سال پیش مرد کار کرد در این مدت به کمک احمد درآمد مرد دو سه برابر زیادتر از سالهای قبل شد بعد از پایان کار احمد از مرد پرسید حالا تكلیف من چیه آیا میتونم برم مرد گفت پسرم در مدتی که تو پیش من کار می درآمد من روز به روز زیابتر میشد بنابراین از تو میخوام که یه سال دیگه هم پیش من کار کنی در عوض این بار موقع رفتن دو هزار تومنم به عنوان مزد سالانه به تو میدم خب چی میگی آلا؟ احمد فکری کرد و بعد به مرد گفت باشه باشه من یه سال دیگه پیش تو میمونم و کار میکنم و بعد موند و به کار مشغول شد ماها اومدن و گذشتن احمد با مرد تصفیه حساب کرد و منتظر شد تا بعد از شنگن جواب سال مرد راهی خونش بشه مرد گفت فرزندم من ده هزار تومن بابت مزدقارت به تو پول دادم الانم حاضرم جواب سالت رو بدم و یه نصیحت مفیدیم بهت می کنم که توی زندگی به دردت میخوره فقط یه شب داره احمد با کنجکاوی پرسید چه شرطی؟ مرد گفت شرط من اینه که حرفام رو میفروشم قیمت جواب سوال هفت هزار تومن و قیمت نصیحتم سه هزار تومنه اگه خواهانش هستی بگو تا با هم معامله کنیم احمد که بیشتر از پیش به شریندن اونها مشتاق شده بود تن به اون معامله داد و رازی شد مرد گفت جواب سوال اولینی که هر وقت عصبانی شدی و خواستی کاری انجام بدی اول صبر کن صبر بعد اونو انجام بده احمد که انتظارش خیلی بیشتر از اینا بود با ناراحتی گفت همین مرد لبخندی زد گفت <تصفيق> پسرم اگه تو از این هفت بیشتر از هفت هزار تومان منفعت نکردی اون وقت پیش من برگرد تا من پولت را پس بدم احمد هفت هزار تومان به مرد داد و گفت حالا نصیحت خودت بگو مرد گفت پسرم اگه با شخص ناشناسی هم سفر شدی همیشه از راه کاروان رو سفر کن احمد با شنیدن این حرف بیشتر از اولی عصبانی شده گفت مرد چرا به خاطر حرفای هیچ و پوچ پولای منو از شنگم در میاری ها؟ فکر میکنی من آدم احمق و عبله که پولی رو که چند سال تمام بابتش زحمت کشیدم برای یه حرف هیچ و پوچ بدم به تو؟ مرد سریع تکون داد و گفت آه، ناراحت و عصبانی نشو پسرم. اگه توی زندگی این حرف من بیشتر از سه هزار تومان برات نیرزید بیش من بیا و پولت رو بگیر احمد سه هزار تومان دیگه به مرد داد و معیوس و نومید آماده رفتن به طرف خونش قبل از رفتن احمد به روستا و خونش مرد دو قرص نون آورد یکی رو به دست احمد داد و دیگری رو بیه دستمال بست و توی جیبش گذاشت بعد به احمد گفت پسرم اگه توی راه گرسنه شدی از قرص نونی که توی دستت داری بخور و اون قرص نون دیگر رو نگردار و وقتی به خونه رسیدی با همسرت نصف کن احمد از مرد خدا حافظی کرد و روانه شد. سر راهش به دو نفر ناشناس برخورد که یکی مرد سازی بود که انواع اقسام کلیدها رو به همراه داشت و دیگری زائری بود که با پاگ پیاده به زیارت می‌رفت. احمد با این دو نفر همسفر شد و مسافتی رو با اونها طی کرد. بعد از کمی راه پیمایی به سر دوراهی رسیدن. یکی از کاروان رو بود که مردم در طول اون رفت آمد میکردن و دیگری راه پردار و درختی بود که از داخل یک جنگل زیبا میگذشت. مرد کلیدساز گفت: رفقا بیاین از این راه باسفا و سرسبز بریم. اینجوری راهمون هم میشه. احمد یاد نصیحت مرد افتاد. این بود که از مرد کلیدساز زائر جدا شده و از راه کاروان رو رفت شب رو در کاروان سرای اتراه کرد تا فردا اول وقت به راهش ادامه بده فردا اول وقت با طلوع آفتاب احمد از خواب بیدار شد و راه افتاد. هنوز راه چندانی نرفته بود که دید زائر با سروزی آشفته کنار جاده نشسته و در حال زاری کردنه. احمد با تعجب پرسید چی شده؟ چرا اینجا نشستی؟ این زاریا برای چیه؟ زائر گفت چی بگم؟ وقتی داشتیم از جنگل رد می شدیم مرد که از خلوتی جنگل استفاده کرد بعد از اینکه حسابی منو زیر مشت و لکت گرفت هر چه پول و لباس هم بود غارت کرد و رفت بعد مرد زائر اضافه کرد حالا بدون پول و لباس و این بدن آشلاش چجوری می برم زیارت کاش منم هم تو از راه کاروان رو میرفتم. اون وقت این بلا سرم نمی اومد. احمد توسط می کرد و با خودش گفت آه اگه سه هزار تومان به مرد کشاورز نمیدادم و نصیحتش رو نمیشنیدم، الان منم به سر رویشت دچار دوچار شده بودم بعد نصفی از غرص نونی رو که توی دستش داشت به مرد زائر داد و از اون خداحافظی کرد و به راهش ادامه داد رفت و رفت و رفت تا به خونش رسید احمد از اینکه به خونش رسیده بود خوشحال بود. قبل از اینکه وارد خونه بشه از پنجره اتاق به داخل نگاه کرد و از اونچه که می دید به خشم اومد. بله. دید که پسر جوونی سر بر زانوی همسرش گذاشته و با اون مشغول گفتگوه احمد طاقت نیاورد و با عصبانیت شمشیرش رو بیرون کشید و خواست به زنش که از دیدن اون متعجب شده بود حمله ور بشه. که یه دفعه یاد حرف مرد کشاورز افتاد که بسرم هر وقت عصبانی و خشبین شدی و خواستی کاری انجام بدی اول صبر کن صبر و بعد اونو انجام بده احمد کمی صبر کرد و از زنش پرسید این پسر کیه؟ اینجا چیکار میکنه؟ همسرش گفت این پسرمونه ببین چقدر به خودت شباهت داره؟ احمد ناباورانه جلوتر رفت به با تعجب به جوان نگاه کرد زنش درست میکفت پسر به اون شباهت زیادی داشت اما اما اون میخواست مطمئن بشه بنابراین رفت سراغ پدر و مادر پیرش و از اونا درباره یه جوان پرسید پدر و مادرش گفتن تو اونقدر از خونه و زندگی دور افتادی که حتی پسر خودت رو هم نمیشناسی. اون پسرت کمسرت با سختی زیاد اونو بزرگ کرد احمد از شنیدن این حرف احساس آرامش و خوشحالی کرد و به خونش برگشت مد وقتی پیشه همسر و پسرش برگشت از اونا خواهی کرد در این لحظه بیاد حرف مرد کشاورز افتاد و گفت خدا رو شکر اگه اون مرد اون نصیحت و حرف گرانبها رو به من نیاموخته بود بدون تردید خطای بزرگی از من سر زده بود بعد از این ماجرا احمد دستمال رو از جیب خودش در آورد و خواست خورس نون رو که در اون بود نسخ کنه. در این حال از وسط نون مقداری پول بیرون ریخت. احمد پولها رو شمردید که ده هزار تومانه و فهمید که مرد کشاورز پولهاش رو به خودش برگردنده. بعد به نامهای بر خود که امراه پولها بود. وقتی نامه رو خوند دید که نوشته احمد گفته رو فراموش نکن. احمد در حالی که هم تجربه اندوخته بود، هم سوادان مخته بود، به اتفاق همسر و پسر جوونش زندگی تازه ای رو شد. اون که براتون نقل کردم ایرانی اندرز پربه بود از گنجینه ادبیات شفاهی مردمان سرزمین آزربایجان برگرفت از کتاب افثانه آذربایجان با ترجمه ای از حمید بخشمند بعد دنیای افثانه ها زیبا و جذابه در این دنیا همه چیز به سمت دنیایی کامل و بی و زیبا پیش میره دنیایی خالی از بدی ها و پلشتیها ها و سیایی ها که دنیاتون خالی از سیایی ها و پلشتی ها باشه تا افثانه دیگر پید